ساعت هفت بود که ما و تام وارد ماشین شکاری شدیم و راه افتادیم سمت لانگ آیلند. تام یک ریز حرف می زد، سر خوش بود و می خندید، اما صدایش برای من و جردن همانقدر دور بود که هم همه غریبه ها در پیاد یا سر و صدای راه آهن هوایی بالای سرمان. همدردی بشر حد و مرزی دارد و ما می خواستیم تمام آن دعوا مرافع ها چون چراقهای شهر پشت سرمان محو شود، سی سالگی به طور حتم دهه تنهایی ها بود. شمار مردان مجردی که میشناختم کم میشد. دهه فروکش کردن شور و شوقها و دهه ریخت شدن موها بود. اما جردن کنارم بود. کسی که برخلاف دیزی قدر عاقل بود که رؤیاهای خاک قدیمش را از دورانی به دوران دیگر نبرد. از بالای پل تاریک که رد شدیم صورت خستش روی شانه کتم رفت و با فشار دلگرم کننده دستش، هجوم سی سالگی فروکش کرد. به این ترتیب، در خونکای تاریک روشن غروب، به سوی مرگ راندیم. میخایلی ایس، یونانی جوانی که کافی را در کنار پشتهای خاکستر میگرداند، شاهد اصلی تحقیقات بود. در اوج گرما تا ساعت پنج خوابیده بود و بعد گشت زنان به سمت گاراژ رفته و دیده بود که جورج ویلسان مریض و بدحال در دفترش افتاده است خیلی مریض رنگش عین موهایش زرد بود و سر تا پا لرزان میخائیلیس به او گفت بهتر است استراحت کند اما ویلسون قبول نکرده و گفته بود اگر بخوابد از کارش عقب میافتد در همین حین که همسایش سعی داشت او را راضی کند از طبقه بالا سر و صدای شدیدی بلند شده بود ویلسون خیلی آرام توضیح داده بود. زنمو و طبقی بالا حبس کردم. باید تا پس فردا اونجا بمونه، بعدش از اینجا میریم. میخیل ایست تعجب کرده بود در آن چهار سالی که همسایه بودن به نظر نمی نمیرسید ویلسون حتی توان اینکه چنین حرفی را به زبان بیاورد داشته باشد. او از آن مردان بیال و بود که وقتی کار نداشت دم در روی صندلی مینشست و رفت و آمد مردم و ماشین ها را در خیابان تماشا می کرد. هر وقت کسی با او حرف میزد، بدون استثنا به نحوی موافق و کسل کسل‌کننده می‌خندید اختیار او دست زنش بود نه خودش به همین خاطر میخائیلی سعی کرد از اتفاقی که افتاده سر در بیاورد اما ویلسون یک کلمه هم حرف نزد و به جایش شروع کرد به کنجکاوی آمیخته به شک و سوه زن در مورد او از او پرسید که در فلان زمان و فلان روز کجا بوده و چه کار می کرده است میخائیل ایس داشت از این قضیه ناراحت میشد که چند کارگر از جلوی در رد شدند و رفتند به سمت کافش و میخائیل ایس از این فرصت استفاده کرد و خودش را از دست ویلسون خلاص کرد. قصدش برگردد اما برنگشت گویا فراموش کرده بود. امین. کمی بعد از ساعت هفت دوباره که آمده بود بیرون یاد هایش با ویلسون افتاده بود چون صدای داد و فریاد خانم ویلسون را از طبقه پایین گاراژ شنید. بزن، به زمین زمینو بزن، تر ترسوی عوضی و بلافاصله فاصله همونطور که داد میزد و دست کان میداد دویده بود در تاریکی غروب و تا میخایل ایس از جا به جنبت از کنارش رد شده بود به قول روزنامه ها ماشین عجل توقف نکرد از دل تاریکی بیرون آمد برای یک لحظه اندو بار به خود لرزید و پشت پیچ بعدی ناپدید شد میخاییلی ایس حتی از رنگ ماشین هم مطمئن نبود. به پلیس اول گفته بود سبز روشن. راننده یک ماشین دیگر هم که به سمت نیویورک میرفت صد متر آن طرفتر نگه داشته بود و رانندهش دوان دوان برگشته بود به جایی که مرتل ویلسون داشت جان میداد. افتاده بود کف خیابان و خون پررنگش با خاک مخلوط میشد. میخائیلیس ایس و این راننده از اولین نفراتی بودند که به جنازه رسیدند اما وقتی کمر لباسش را که هنوز خیس عرق بود جر دادند دیدند پستان چپش تلب تلبی کرد و شل شد و دیگر نیازی نبود که ببینند قلبش میزند یا نه دهانش کاملا باز بود و کمی از دو طرف جر خورده انگار راه خروج شور و حال بی امانی که تمام عمر در جانش جا داده بود تنگ بود هنوز به محل نرسیده بودیم که سه چهار تا ماشین و جمعیتی را دیدیم که جمع شده بودند تام گفت تصادف شده خوبه بالاخره یه چیزی هم گیره ویلسون میاد سرعتش را کم کرد قصد ایستادن نداشت نزدیکتر که شدهیم صورت‌های ساکت و مات مردم جلوی گاراژ ناخوشاگاه او را متوقف کرد با تردید گفت یه نگاهی بندازین فقط یه نگاه بلا فاصله متوجه ناله‌های گنگی شدم که یک ریز از گاراژ به گوش می رسید. از ماشین که پیاده شدیم و به سمت در رفتیم ناله بدل شد به وای خدا که بریده بریده و مدام به گوش میرسید. تام با نگرانی گفت اینجا اتفاق بدی افتاده. و روی نوک پا بلند شد و از فراز سرهای در هم فرو رفته به گاراش چشم دوخت که فقط یک چراغ زرد که در یک سبد سیمی آویزان بود در آن میسوخت بعد از ته گلویش صدای خشنی آورد و با خشونت حرکتی به بازوهای ستبرش داد و جمعیت را هول داد و جلو رفت. دایره جمعیت با غرغر دوباره بسته شد و یک دقیقه طول کشید تا توانستم چیزی ببینم. تازه واردها حلقه را شکستند و من و جردن به داخل هول داده شدیم. جنازه مرتل ویلسون لایه پتو پیچیده شده بود و این پتو هم لای پتوی دیگر بود. انگار که در آن شب داغ سردش شده باشد. روی میز کار کنار دیوار خوابانده شده بود و تام پشت به ما بی حرکت روی او خم شده بود کنار او پلیس موتورسواری ایستاده بود که عرق ریزان مینوشت و خط میزد تا اسمهایی را توی دفترچش بنویسد اولش نمی توانستم منبع آن ناله ها را پیدا کنم اما بعد ویلسون را دیدم که در آستانه دفترش ایستاده و با هر دو دست تیرک های چارچوب را گرفته و خود را به عقب و جلو تاب می‌دهد یک نفر خیلی آرام با او حرف میزد و گهگاه سعی داشت دستی روی شاناش بگذارد اما ویلسون نه میشنید و نه میدید. نگاهش آرام از چراغ سقف به میز کنار دیوار دوخته می شد و دوباره به سمت چراغ برمیگشت و مدام ناله دلخراش سر میداد وای خدای من وای خدا وای خدا وای خدای من وای خدای من. تام سرش را بلند کرد و بعد از اینکه با چشمان ماتش اطراف گاراژ را ورانداز کرد، زیر لب حرف نامفهومی به پلیس زد. پلیس داشت می گفت میم الف واف واو و و و و و مردی که کنارش ایستاده بود تصدیق کرد. نه میم الف واو ر واو تام با عصبانیت گفت: به من گوش کن.» پلیس گفت: «ر واف جیم جیم» وقتی دست پهن تا محکم روی شانه پلیس فرود آمد گفت چی میخواید آقا؟ ها؟ ها چه اتفاقی افتاد؟ میخوام بدونم. ماشین به در درجا مرده. تام در حالی که به او زل زده بود تکرار کرد درجا مرده. این باد دویده وسط جاده. اوازی حتی نگر نداشته. میخائیل ایس گفت دو تا ماشین بوده یکی میومد یکی میرفت. میدونین؟ پلیس طرف پرسید کجا میرفته؟ هر کدوم از یه طرف می رفتن. خب این زن دستش پرید به سمت جنازه پتوپیت شده و در نیمه راه افتاد پایین دوید وسط جاده و ماشینی که از نیویورک میومد زد بهش با سرعت سی چهل مایل افسر پلیس گفت اسم این ملچی هم اسم نداره سیاپوست زردم بوی خوشلباسی آمد جلو گفت یک ماشین زرد بود یک ماشین زرد بزرگ نو پولیس گفت، تصادف و دیدی؟ نه ولی اون ماشین پایین جاده از من سرقت گرفت و سرعتش رسید به شهست، هشتاد، نوان، بالتر. بیا اسم تو بگو، ساکت. میخوام اسمشو بنویسم بخشی از این مکالمه باید به گوش ویلسون که در چارچوب تکان میخورد رسیده باشد. چون یک دفعه حرفهای جدیدی بین آن عبارت یکسانی که مدام میگفت دوید و نفس نفس زنان گفت. شما نمیخواید به من بگید چه ماشینی بهش زده خودم میدونم چه ماشینی بوده به تام که نگاه کردم دیدم عضلات پشت کتفش زیر کت منقبض شد به سرعت به طرف ویلسون رفت و جلویش ایستاد و او را محکم در آغوش گرفت و با صدای گرفته او را تسکین داد خودت تا جم و جور کو مرد در آن حال ویلسون به تام چشم دوخت و سعی کرد روی نوک پنجه هایش بایستد و بعد اگر تام نگهش نداشته بود از زانو زانوخم میشد و میافتاد زمین تام در حالی که او را تکان میداد گفت گوش کن گوش کن من همین یه دقیقه پیش از نیویورک رسیدم اینجا برات اون ماشین شکاری که حرفش زدم آوردم اون ماشین زرد که بعد ازور از با اون بودم مال من نیست میشنوی تمام بعد ازور از نایدمش فقط من و آن سیاه‌پوست آنقدر نزدیک بودیم که حرفهایشان را میشنیدیم اما پلیس از لحن او چیزی دستگیرش شد و با های پر ابهت به این سمت نگاه کرد و پرسید اونجا چه خبره؟ تام در حالی که هنوز محکم به ویلسون چسبیده بود سرش را برگرداند و گفت من رفیقشم میگه ماشینی که زده رو میشنسه یه ماشین زرد بوده پلیس بدون که دلیلی داشته باشد نگاهی از سر سوء زن به تام انداخت اون وقت ماشین جنابالی چه رنگیه؟ یه شکاری آبی من گفتم ما همین الان از نیویورک رسیدیم اینجا. یک نفر که کمی پشت سر ما میراند، این حرف را تایید کرد و پلیس رویش را از ما برگرداند. حالا بذارید برم سر اون اسم درستش کنم. تام در حالی که ویلسون را مثل عروسک چوبی جمع کرده بود، او را به سمت دفتر برد و روی سندلی نشاند و برگشت و آمرانه و تحکم آمیز گفت، یکی بید این جا بشینه پیشش؟ تام به جمعیت نگاه کرد تا اینکه دو مرد نگاه کوتاهی به هم انداختند و با بیمیلی به سمت دفتر رفتند. بعد تام در را رویانها بست و طوری که چشمش به میز نیفتد از تنها پله دفتر پایین آمد. به من که رسید آهسته در گوشم گفت بیاد داره. با زور بازوهای ستبرش راه را باز کرد و ما از دایره جمعیتی که هنوز در حال اضافه شدن بود به بیرون هل داده شدیم. از پزشک کیف به دستی گذشتیم که حسابی عجله داشت و نیم ساعت پیش به امیدی واهی خبرش کرده بودند. تام تا سر پیچ آرام راند و بعد پایش را روی گاز فشار داد و ماشین شکاری شب را شکافت. کمی بعد صدای گریه آهسته ای شنیدم و دیدم اشک روی صورتش جاری شد. حق حق کنان گفت بزدل عوضی حتی تروزم نکرد. ناگاه خانه بیوکنن ها در میان خشخش برک های درختان تیرهی ظاهر شد. تام کنار ایوان نگه داشت و به طبقه بالا نگاه کرد. جایی که دو پنجره از وسط گیاهان بالا رونده روشن بود. گفت، دیزی خونه است. از ماشین که پیاده شدی، نگاهی به من انداخت و اخم کوچکی کرد. باید میرسوندم وست اگنیک. امشب دیگه کاری با هم نداریم. تغییر کرده بود. با متانت حرف می‌زد و مصمم. وقتی زیر نور ما مسیر شنی را به سمت ایوان می‌رفتیم، با چند جمله تند و تیز تکلیف همه چیز را روشن کرد. آه به تاکسی زنگ می‌زنم که بیاد تو رو برسونه خونه. تا وقتی تاکسی رسه با جردن بیاد تو آشپس خونه و شام یا که دوست دارید بخورید. بعد در را باز کرد و گفت: بیاد تو، بیاد تو." نه، ممنونم. لطف کن تاکسی خبر کن. من همین بیرون منتظر میشم. جردن بازویم را گرفت. نیک، نمیای تو؟ نه، ممنونم. کمی حالت تعو داشتم و میخواستم تنها باشم. اما جردن کمی طولش داد و گفت: تازه نه اگر میرفتم تو به خودم لعنت میفرستادم. از بس که از همه آن آدمها سیر شده بودم و از غذا این دایره شامل جردن هم میشد. لابد ی از این تنفر را در صورتم خواند. چون بلا فاصله برگشت و به سرعت از پله های ایوان رفت بالا. چند دقیقه نشستم روی زمین و سرم را بین دست هایم گرفتم. از داخل صدای پیشخدمت را شنیدم که به تاکسی زنگ زد. بعد آهسته آهسته از حیات بیرون آمدم تا کنار دروازه منتظر تاکسی بمانم. هنوز 20 متری دور نشده بودم که اسمم را شنیدم و گتس بی از بین بوته آمد میان گذرگاه. فکر کنم اغلم از کار افتاده بود چون نتوانستم به چیزی فکر کنم جز و شلوار صورتیش زیر نور ماه. پرسیدم اینجا چیکار کار میکنی؟ ایچه همینطوری واسدم رفیق وضعیت نفرت انگیزی بود از کجا معلوم که نمیخواست از آن خانه دزدی کند؟ تعجب نمیکردم اگر پشت سرش بین بوته ها چهره خبیس و شیطانی میدیدم چهرههایی مثل وولز خایم یک دقیقه ای بعد پرسید تو جاده خبری نبود؟ چرا؟ بود؟ مردد شد زنه مرد؟ بله حدث میزدم به دیزی گفتم فکر کنم مرده همین بهتر که شک یه دفعه وارد بشه دیزی خوب تحمل کرد طوری حرف میزد که انگار اکسل عمل دیزی تنها چیزی بود که اهمیت داشت گفت من از راه فری خودم رسوندم به وست. اگو ماشینو گذاشتم تو گاراژ. فکر نکنم کسی ما رو دیده باشه البته مطمئن نیستم در آن لحظه آنقدر از او متنفر بودم که لزومی ندیدم بگویم که در اشتباه هست پرسید زن کی بود؟ اسمش ویلسون بود شوهرش گاراژ داره چجوری این اتفاق افتاد؟ خب من سعی کردم فرمون رو بپیچونم حرفش را خورد و ناگهان حقیقت ماجرا را حد زدم دیزی پشت فرمون بود؟ بعد از چند لحظه گفت آره البته میگم من رانندگی میکردم میدونی از نیویورک زدیم بیرون خیلی عصبی بود و گفت که اگه رانندگی کنه حالا شروع به راه میشه اون وقت درست وقتی داشتیم از یه ماشین سبقت میگرفتیم زنه پرید وسط جاده همش توی چشم به هم زدن اتفاق افتاد به نظرم اومد میخواد با ما حرف بزنه انگار ما رو میشناسه. خب اول دیزی پیچی طرف اون ماشین و بعد ترسید و فرمون و برگردون طرف زنه همون لحظه که دستم گذاشته بودم روی فرمون زربه رو حس کردم باید در جا مرده باشه آره لط و پار شد قیافش در هم رفت و گفت برام تعریف نکن رفیق. هر حال دیزی تخت گاز رفت سعی کردم نگهش دارم اما نمیتونست نگرداره ترمز دستی رو کشیدم بعد دیزی شل شد و افتاد رو پامو من رانندگی کردم و بلافاصله فاصله اضافه کرد فردارش آلش خوب میشه من فقط میخوام مطمئن بشم تام در مورد مسائلی که بعد از اون اتفاق افتاد اذیتش نکنه. خودش رو تو اتاق حبس کرده و اگه تام بخواد وحشی بازی در بیاره، چرا و خاموش روشن میکنه. گفتم کارش نداره، حتی بهش فکر نمیکنه بهش اعتماد ندارم رفیق. کی میخوای اینجا منتظر بمونیم. اگه لازم باشه تا صبح. دستکم تا وقتی که همشون برن بخوابن. نکته ای به ذهنم رسید. فکر این که تام بفهمد رانند دیزی بوده در این صورت می توانست این تصادف را به چیزی ربط بدهد ممکن بود هر فکری بکند به خانه نگاه کردم دو سه پنجره در طبقه پایین روشن بود و پنجره اتاق دیزی با نوری صورتی در طبقه دوم گفتم شما همینجا بمون من میرم ببینم خبری از داد و هست یا نه از کنار چمنها به سمت امارت رفتم به نرمی از سنگ ها رد شدم و با نک پنجه پله های ایوان را بالا رفتم. پرده های اتاق پذیرایی باز بود و دیدم که اتاق خالی است. از جلوی آن ایوانی که سه ماه پیش در آن شب بهاری آنجا شام خورده بودیم هم گذشتم و رسیدم به مستطیل کوچکی از نور که حدس زدم باید پنجره ی باشد. پنجره مات بود ولی شکافی در جام پنجره پیدا کردم. دیزی و تام روبروی هم پشت میز آشپزخانه نشسته بودند و یک بشخاب جوجه سرخ شده و دو بطری آبجو روی میز بود تام خیلی جدی با دیزی حرف میزد و دستش در اوج صداقت آمد و روی دست دیزی قرار گرفت ناگهان دیزی به اون نگاه کرد و به تأیید سرتکان داد خوشحال نبودند و هیچکدام نه به جوجه دست زده بودند و نه به آبجو ناراحت هم به نظر نمی رسیدند. در این تابلو به وضوح حالت محرمانه طبیعی خاصی وجود داشت و هر کس آن را میدید متوجه میشد که مشغول نقشه کشیدنند. وقتی داشتم پاورچین از ایوان پایین میآدم صدای تاکسی را شنیدم که در گذرگاه تاریک به سمت خانه میآد. گفی همان جایی که از او جدا شدم ایستاده بود با نگرانی پرسید: « همه چی اون بالا رو به با کمی درنگ جواب دادم، بله، امن و امان، شما بهتر بری خونه یک کم استراحت کنیم، سرش را تکان داد که نه، میخوام اونقدر اینجا بمونم تا دیزی بره تو رخت خواب، شب بخیر رفیق، دستهایش را در جیب کتش کرد و چنان مشتاقانه به کار زیر نظر گرفتن خانه برگشت که انگار وجود من به شب زندداری مقدسش لطمه وارد کرده بود، را افتادم و او را به حال خودش گذاشتم که در محتاب بیستد و مراقبه هیچ باشد